بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراك الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دوزهمين ذكر از أسكار سبقاه وشامقاه حديث منيفر يارو يوبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياري أز يارانك براي الجهاد بأفريقى ميره نقيت كنين أز رسول الله صلى الله عليه وسلم شنيدا من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة يجب أن صلى الله عليه وسلم إن ذکر اون روایتی که مد الشامگاه صحیح نیست اون چیزی که صحت داره این ذکر در وقت صبحگاه گفته میشه مثل ذکر قبلی ذکر یازدهم ذکر دوازدهم اینها کار خاصه که صبحگاه کسی که این ذکر را بگه رضیت بالله ربن راضیم بین اینکه پروردگارم الله هست الله پروردگارم هست و اسلام دین و محمد صلی الله علیه و سلم کسی این را بگه صبحگاه این ستا رضایت به پروردگاری الله و رضایت به دین اسلام و پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم این را بگه اقرار بکنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من من در روز قیامت زمانت میکنم که دستش را بگیرم و او را وارد بهش کنم کسی این را بگه ولی این گفتم ذکر زبونی نه قلبی اسلام را با قلب قبول داشته باشی سبحان الله صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض می شود مریض می شود بیاد به مسجد دو نفر را سفارش می کرد می بیایید به غل من را بگیرید یکی این طرف یکی این طرف یه ها بین رجله یعنی بین دو تا فرد کلش میکرد کردن می مسجد تا اینکه با جماعت در مسجد بخونه اسلامه حب نمازه نه فرار از نماز نه گریز از نماز حب نماز رو نواو کنید مریضه مریضه نمیتونه بیاد نمیتونه روی پای خودش بیایسه دو نفر را سفارش میکنه که بیایید زیر بغل من رو بگیرید تا اینکه من بیام به مسجد صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن مكتوب نابیناست میگه یا رسول الله راه هموار نیست قطع میشه بارون میاد راه منم نابینام راه همم هم دوره عز دارم که نماز نیام گفت که بله عز داری همین که پشت داد بره گفت که بیا اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام فهمید آیا تسمع النداء و تسمع النداء نداره را, را میشنوی گفت که آری بله میشنوام قال اذا فاجب اذا فاجب فاجب امره یعنی اجابت کن یعنی وظیفه‌ت که اجابت کنی نوبیناس راه هم هموار نیست راه هم راحت نیست که بیاد چی رو رسونه؟ همیت نماز. گفتم بین شخص و بین کفر نمازه. فرق بین ما و کفار در نمازه. نماز فرض پنجگانه یک طرف نماز جمعه هم طرف دیگر. فرض عینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث من ترك ثلاث جمع تهاونا ختم علی قلبه کسی سه جمعه نماز جمعه را تهاون بکنه، کوتوی بکنه، ترک بکنه. الان ترس وحشت رعب هرچی هست سه جمعه از باب بازیگوشی و لحو و لعب سه جمعه یا خواب اهمیت نده به نماز جمعه این شخص قلبش پلوم میشه یعنی چی قلبش پلوم میشه؟ یعنی قلبش مثل منافقین بسته میشه یعنی تو میشی منافق نه اینکه بگم بگیم نفاق عملی که اون سوصفی که درباره باره منافق اومده اگر حرف بزنه دروغ میگه و اگر بعده بده خلاف بعد اینجا جمله نه، اینجا نفاق اعتقادی یعنی قلبش پلم میشه دیگه قلبش بسته میشه از ایمان. دیگه ایمان وارد این قلب نمیشه یعنی ختم میشه و مهر کف برش میکنن، مهر نفاق برش میکنن. مسئله مسئله شوخی نیست. گفتم عهد بین ما و کفر، یعنی بین شرد فرد مؤمن و کفر نمازه. و این از باب استسلام به امر اسلامه. راضیم پروردگارا به آفریدگار بودند به اله و معبود بودنت و به این که اسلام دین برحقه رضایت آیا این رضایته که من بیام با زبانم بگم ولی در عمل خلاف اسلام انجام بدم اسلام بر من دروغ حرام بکنه من, من دروغ بگم ویلون للمکذبین دروغ شعنش خیلی عظیمه خصوصاً این دروغ بخواد با زبان باشه یا با عمل و رفتار باشه عمل رفتار ریاست تظاهر به اسلام میکنه ادعای اسلام میکنه ولی که همسو و همخو با کفار و منافقین و مشرکینه بلنگوی مشرکین و کفاره در نقض اسلام در زشتسازی اسلام اسلام چیه؟ سخگیری، حجاب، نماز نمیده روزه، موسیقی حرام غیر از تنروی چیز دیگر نیست به من بگید این بلنگوی شیطان یا بلنگوی اسلامه والله بلنگوی شیطانه این داره مبارزه با اسلام میکنه این هزاران بار این ذکر را بگه ازش قبول و پذیرفته نمیشه هیچ وقت پذیرفته نمیشه ما در بحث اهمیت این ستا چیز و اعلان رضایت به اون به پروردگاری معبودیت الله و به اینکه اسلام دین بر حقه و محمد صلی الله علیه و salam خاتم النبیینه حدیث عظیمی داریم خصوصاً حدیث اون سه چیزی که اولین چیزهایی که یا اون اولین چیزهایی که در قبر منکر و نکیر میان از ما میپرسن حدیث براب نازم خیلی حدیث مهمیه در مصادم محمد و سنن ابی داود خیلی حدیث بزرگی من اینجا خلاصه میگم به خاطر اهمیتش هرچند که بعضی از دوستا براش تکراره ولی این والله خیلی حدیث بزرگیه چون آخر عاقبت ما رو بهمون نشون میده پس از مرگ آخر عاقبت کسی که قناعت و رضایت به این سه چیز نداشته باشه براب ابن عازر میگه روزی بر سر قبری نشسته بودیم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ایستادند که ان علی رؤوسنا الطير مثل اینکه پرنده روی سر خیره بودیم به رسول الله سرمون تکون نمی خورد چون آدم سرش تکون بخوره پرنده پرواز میکنه میگه خیره دقیق گوش میدادیم سخنان رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودن مؤمن زمانی که میخواهد فوت بکنه الله فرشتگان را میفرسته با ملک الموت وقتی که ملک الموت میاد روح اون شخص مؤمن را قبض کنه روح اون مؤمن چنان از بدنش کشیده میشه که انما یقطر الماء و منفی السقا همچون آبی که از کوزه چکیده میشه وصف ها این وصف دقیق بعد از مرگه وصف از دنیا رفتنه چگونه ما از این دنیا میرویم ختم این دنیا بر ما چگونه خواهد بود روح از ما کشیده میشه روح از بدن ما کشیده میشه از مؤمن همچون قطره آب اما شخص گناهکار همچون پنبه خیسی که از لابلای خار کشیدی میشه تیکه پاره میشه تیکه تیکه میشه اون روح و از بدنش جدا میشه روحه آیا این روح روح خداست؟ نه والله روح انسانه اگر روح خدا بود که تیکه تیکه نمیشد این روح روح که که الله افریده پس چرا الله در قرآن گفته و نفخت و فیه من روحی از روح خودم درش دمیدم این روح خودم نیست روحی از سوی خودم هست از طرف خودم هست مثل فرموده خدا ناقت الله که در در قصه استقامه سمود اومده شطور خدا شطور خدا که نبود یا بیت الله خونه خدا خونه خدا که توش نیست از باب شرف مکان اون یا اون جایگاه اون خونه الله دسبت به خودش میده میگه بیت الله از باب شرف اون شطوری که قوم سمود او را کشتن میگه ناقه الله از باب شرف این روح الله, می... الله میگه چی؟ میگه روحی روح یعنی از طرف من از سوی من و این روح این چینین عذاب میبینه تکی تکی میشه و این روح هست که عذاب میبینه فرعون وقتی که بدنش از غرق نجاتیاف چنانچه در قرآن الله میگه بعد میگه که چی و نار یعرضون علیها فقط نکنه بدن نجات یابد دیگه عذاب نمینه بعد از اینکه مومیایی اش کردن نه و نار یعرضون علیها غدا و, و عشیه بار جهنم عرضه میشه الله ما را نجات بده از عذابش از خشمش رسول الله صلی الله علیه و این مرحله پس از مرگ را دقیق داره بهمون توضیح میده روح کشیده میشه اما روح مؤمن با کفنی از بهشت و با, با عطری از عطر های بهشت که به دست فرشتگان عطر بهش با بوی خوش بهشتی میان سراغش کفنش میکنن میشورنش دست به دستش میکنن فرشتگان به استقبالش میان سوال میکنن من هذا؟ فیناده با احسن اسمائه الَّذی کانه یناده فی الدنیا و بهترین نامی که در دنیا صداش میزنن او را صدا میزنن فلانی فرزند فلانی تا اینکه در آسمان میبرن و میزنن در آسمان باز میشود تا اینکه به نزد پروردگار میرسه در هر آسمان میزنن فرشته می ها این کیه میگن فلانی و بهترین نام صداش میزنن نزد پروردگار که میرسه الله جل شأنه میگه من هذا کیه بعد میگه فلانی فرزند فلانی میگه اکتبو کتاب عبد فی علیین. در پرونده علیین بزرگواران شأنش اون بالاست در اون پرونده بهشتیان اسم و نامش رو بنویسید. الله ازش خوشنوده. الله از ما خوشنود باشه. الله دستور میگه ادت که اون روح به قبرش برمیگردنه. اون لحظه هست که مرده دوباره در قبر زنده میشه وقتی که روح دوباره به جسد باز باز, باز میگردد. اون لحظه هست که رسول الله میگه صدای پا میشنوه اون مرده نه اینکه مطلقاً اون لحظه فقط اون لحظه ای که روح دوباره باز میگرده به قبرش که منکر و نکیر اومدن این تا سآل را بپرسند من ربوک و ما دینک و من نبیک. نهر صدایی، صدایی پای دن پایی ها میرن، تنهاش میذارن اما شخص گناهکار، اما شخص کافر و مشرک و اما شخص منافق اون شخص که اهل گناهه، اهل معصیت و بدعته، اهل کفر و شرکه با کفنی از کفن جهنمیان، با اون کفنی از جهنم میان کفنش میکنن اون روحش اون روحی که گفتیم همچون پنبه خیسی تیکه تیکه و پاره پاره شده اون روح را میبرن بالا فرشتگاه میگن این کیه با این بوی بد میگن فلانی با بدترین نام صداش میزنن در آسمان بهش باز نمیشه و رسول الله این آیه را تلاوت میکنن لا تفتح لهم ابواب السماء این اشخاص هرگز در آسمان با آنها باز نمیشه حتی یلجلجمل فی سم الخیاط اگر شطور تونست از سوراخ سوزن عبور بکنه اونها در آسمان بهشون باز میشه غیر ممکنه همونطور که شطور از سوزن از سوراق از سوزن عبور بکنه غیر ممکنه که در آسمان به این افراد باز بشه از اونجا هست که الله میگه کیه این میگه فلانی فرزند فلانی و بدترین نام صداش میزنن الله میگه اکتبو کتاب عبدی فیس جین در پرونده جهنمیان نامش را بنویسید اونجا هست که روحش پرت میشه نه که بیارن پرت میشه در قبر وقتی که منکر و نکر میان سوال میکنن پروردگارت کیست میگه ها ها لا ادری الله و عظمتش این آیت الكرسی و عظمتش نفهمیده نشنخته الله را میگید ها ها لا ادری نمیدونم از دینش میپرسن میگه ها ها لا ادری از پیانبرش میپرسن میگوید ها ها لا ادری نمیدونم اونجا هست که رسوله سر میبید دری از جهنم به قبرش باز میشه و از باد و آتش جهنم در قبرش دمیده میشه و اما شخص مؤمن دری از درهای بهش باز میشه در قبرش و در روایت اومده که روح اون مؤمن و ارواح المؤمنین و ارواح المؤمنین تعلق من, من شجر الجنه مؤمنین در نعیمن ارواحشون از میوه های بهشتی میخونن در بحث شهده اومده ارواح الشهده في اجواف قیرین اونجا ک قیرین اینجا فی اجواف طای فرق مؤمن و شهید در این شهید فرشتگانی مسخرشونن اینجا مؤمنین خودشون همچون پرنده یعنی که پرواز میکنن در بهش چطوره کیفیتش ما نمیدونیم این زندگی پس از مرگ دنیا برزخیه ما چیزی از اون نمیدونیم پس این ذکر و ورد هر وقت که میخونی باید بیاد باشیم این رو درست بگیم که این پاسخ سوال ماست وقتی که در قبل دوچار اون فتنه و سآل منکر و نکیر میشیم اونجایی که منکر و نکیر بر سر ما میستن اگر گفتیم ها ها با چوبی بر سر ما میزنن با چماقی بر سر ما میزنن که تمامی مخلوقات جز جن و انس فریاد اون شخص میشنمن لحظه خیلی سختیه رسول الله صلی اللہ دوتا از یارانش دوتا از یارانش فوت میکنن بعد از اینکه دف میکنن را صورت الله نشونش میده که اونا دارن عذاب میبینن مر النبي صلی و آله به قبرین فراى انهما يعذبان فقال ما يعذبان من كبير بل انهما كبير دید که عذاب میمیرن گفتن فرمودن عذاب میبینن ولی نه به خاطر امر بزرگی بل بزرگ است چون سیانه الله هست. در ظاهر کوچک است این گناه ولی شأن این گناه خیلی بزرگه چون سرپیچی کردن سرپیچی کردن از فرمان الهی است غیبت کردن تهمت زدن عدم شصن خود از نجات فقاله اما حد همما ف كان همشی بال غیب در رووای ب نه و عمل آخره و كان و در روواتی لا یاسط من بول. یکیشون اهل غیبت نمای بود و دیگری خودشو پاک نمیشه خوشش در امان از, از ادرار قرار نمیدادنی طور ادارار میکرد که اون از اون درار به بدنش می پاشید و کسی که ادرار و نجاست روی لباسش باشه پاک و پاکیزی نباشه نمازش مورد قبول نمیشه. ایجا هست که رسول دستور میده میگه شاخه تنه نخلی لیبیاری شاخه نخلی را بیارید که با شفاعت من با شفاعت رسول الله نه به خاطر درخت با شفاعت رسول عذابشون کم بشه میگه من شفاعتشون می کنم با شفاعتم عذابشون کم بشه شفاعتشون کنه نزد الله که کم بشه چون حق بنی آدمه حق الله شاهد از حق خودش بگذره ولی حق الناس بخیده نمیشه پس این حدیث تذکره مهمی هست و تعهد بزرگی هست یاداوری به اون تعهد بزرگه که هر روز یاداور خودمون بشیم صبحگاه رضی تو بالله رب راضیم پروردگار را به اینکه تو معبود به حق منی از حرفت سرپیچی نکنم و دینت را بپذیرم و سخن رسولت را بر سر چشم بذارم معناشینه دیگه حرف و سخن پیغمبرت را بر سر چشمم بذارم اینجا هست که پاداش مؤمن چی میشه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دس شرب يجري بأوره وارده بأشوك. سيدهم سبحان الله بحمده وعدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه. سبار. كي؟ صبقه. حديث جواريه هس. جواريه همسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. أذنزشون بعد الزماء الصبح خارج شده وهي في مسجدها ما... جواريه در مسجد بوته. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة عمر المؤمنين جوهر يسر جوهر خدش نشاسبه رسول الله رفتا وقت الضحى بارقشته رسول الله صلى الله ما زلت على الحال التي فرقتك عليها درهم حامن حالي هسي بودي يعني در حامن حالي هسي من ترى تر كرم رها كرم رفتا مالان ومدام قالت نعم قفتا آري قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك, بعدك أربع كلمات بعد ذلك من رفت ما این سه تا کلمه را گفتم ثلاثه مرات ثلاث مر... این چهار تا کلمه را سه بار گفتم لو وزنت بما اگر وزن بشه با اون چیزی که تو از صبح تا الان وقت وها یعنی از ساعت 5 تا نه در نظر بگی اگر این این چهار تا کلمه من با اون چیزی که تو در این سه چهار ساعت ذک گفتی وزن بشه لو وزنتهن بر اونها سنگینی پیدا میکنه چهار تا کلمه هست ولی سنگینی این چهار تا ذک از خیلی از از کار که تکرار بشن سنگینیش خیلی بیشتره سبحان الله حمد بعد بهشون یاد میده سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نف نفس نفسه و زنت عرشه و مداد کلمات. سبحان الله و بحمده نف و اثبات گفتم سبحان الله با کمون از گفتم از هر سقع عیب و نقصی سبحانه و به اثباته اثبات تمامی صفات نیک برای الله حی قیوم درسته تمامی صفات نیک سبحان الله به حمده عدد خلقه این سبحان الله به حمده به تعداد خلق خدا به یعنی کمیت یعنی هر آن عددی که از مخلوقات وجود دارد تلیل یارده هر هم همچقدر هست عددش به تعداد اون پروردگاه را تسبیحت میگویم و حمد و ستایشت میگویم تسبیحت پا تو پاک منزهی و مستحق صفات و نیک و خصال نیکی و رضا نفسه رضایته به مقدار و عزمت رضایتت رضایت الله رضایت الله قابل وست نیست کیفه؟ اونجا عدد تعداد کمیته اینجا کیفیته به اون مقداری که تو از من راضی باشی تصمیحت میگویم و ستایشت میگویم حمدت میگویم وزنت عرشه و به مقدار و سنگینی عرشت عرش خداوند چگونه بس شده؟ و یحمل من فوق هم؟ سمانیه یعنی چی سمانیه؟ هشت فرشته یا هشت ردیف فرشته؟ الله علم وصف و عزمت این فرشتگانی که عرش را هم میکنن که سخف و آسابون هاست قابل وصف نیست از عزمتشو خب الان عرشی که با این عزمتی که فرشتگانش اینقدر عظیمن ما از الله می خواهیم که این تسبیحمون برای ما نوشته بشه به سنگینی عرش ما گفتیم در فضیلت کلمه لا اله الا الله چی اومده؟ حدیث بطاقه شخصی میاد در روز قیامت اعمال بدش و گناهانش سنگینی کرده و هیچ چیزی جز کلمه توحید لا اله الا الله نداره. شاید شخص کافر بوده فقط در آخر عمرش یک کلمه رو داشته و اونم کلمه لا اله الا الله. این فرد در روز قیامت هیچ چیزی نداره الا از اعمال خوب. جز این کلمه توحید لا اله الا الله میارن در کفه ترازو قرار میدن اون طرفش اعمال بده کل اون اعمال بدش برملا میشه نابود میشه با اون کلمه توحید لا اله الا الله الان اینجا هم همین ما از الله میخوام این تسبیح به وزن عرشش باشه یعنی سنگینی داشته باشه که اونجا در روز قیامت ترجیح پیدا بکنه بر اعمال بدمون کردار بدمون گناهان بدمون که گناهان بدمون نابود بشه در مقابلش این عزیمت این کلمات ومداد كلماته الله أكبر ومداد كلماته مددت أعيو دريم دار بحث كلمات الله كل كان البحر مدادا لكلمات ربي أقر دريا مركبي وشيكه كلمات الله سخن الله ربي نميسه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أقر إن أبهارا تندين بورا بكونين مركبش بكونين كلمات الله تمنميشه أعيو بعدها سرين اللقم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر و من بعده سبعت و ما نفدت کلمات الله هفت بارم آب دریای رو کره زمین هم بار بشه و بیاییم نه که هفت بار قد که تصور بکنی هر قدم باشه کلمات و آیات و نشانهای الله قابل تمونیست از عظمت اون چیزی که الله آفریده از اون نشانهایی که آفریده از اون سخنش از اون وصفش چه خودش صفاتش و چه افعالش قابل وصف نیست عزمتش الله اوصافش از حی قیوم از رحمان و رحیم از ودود و لطیف قابل وست نیست و از اون افعالش فعل الله از اون مخلوقاتی که آفریده فعلی دیگه ما الان جز مخلوقات الله که ما را آفریده عزمت اونها هر چقدر بیاید بنویسید شما برید در دانشگاه ها ببینید در چش عظمت چش چقدر نوشته شده برید نبا بکنید کتاب ها در دانشگاه ها نوشته شده درباره آبی که زیر این پلک چشم من و شماست آب زیر پلک من و شما که این غده هایی که الله قرار داده که این غده این آب ضد یخ تولید بکنن که اگر سرما زیاد بشه زیر صف بشه این آب یخ نبنده عقل بشر کار نمیکرد که ماده زده یخی هست تا 1400 سال الان بعد از 1400 سال او بدن کشف کردن و آب رادیاتوری برای ماشین ساختن که این آب تو رادیات یخ نبنده که در سرما و یخ بندان بتونه اون ماشین حرکت بکنه چقدر باید کارخانه بیارن تا این که آبی را تولید بکنن که ضد یخ باشه ولی این آب ضد یخی که کارخانه‌ای که الله اینجا گذاشته بیاید اون کارخانه ها را با این کارخانه یک غده ریز کوچکی که در چشم گذاشته شده بیاید با هم مقایسه بکنید والله قابل قیاس نیست عظمت این آبی که 70 درجه زیر صفر یخ نمیبنده. این آبی که هر چقدر گرد و غبار روش بشینه نمیذاره آسیب به چشمت به اون شیشه ای به اون عدسهی که الله گذاشته آسیب بزنه اون گرد و غبار ماشین نگاه بکنید بعضی از ماشین ها گرد و خاک که میاد چطور شیشه سوراخ سوراخ میشه من دیدم بعضی از ماشین ها یا ماشین خودم یا چراغی ماشین جلو نگاه بکنید زرد میشه از بس که شن و ماسه تو سرعت بهش میخوره آسیب میبینه ولی چشم انسان آبی عائق حائل قرار داده که هرچقدر گردخاکم بهش برخورد بکنه آسیب به اون عدست وارد نشه آیا به خودمون گفتیم این چه نعمت بزرگیه؟ چه آفرینشیه چقدر از تزها و از پای اومدن شمارش کردن که چقدر غده و سلول توی چش؟ چقدر روزانه ها سلول تجدید میشه یعنی میمیرن سلولهای جدیدی زنده میشون فرداش دیگه نیستن هی دارن تجدید میشن چقدر عظیم خلق خدا چقدر این آفرینش زیباس این موبایل اگر دوربینی داره ضبطی میکنه احساس نداره ولی بله چشم منو تو احساس داره میری خونه منزل همسر و بچهات با لباسی خوبی میبینی بگید الحمدلله تبارک الله احسان لذت در قلبت بیاد این چش فقط محل دیدن سبز آبی نیست بلکه محل احساست هست سرور و شادی در قلبت ایجاد میکنه نعمت های الله که اگر بخواهیم بنویسیم از پس یک نعمت بر نمیام اونم چش یک دونه چش. که اگر فردی نامینا بشه خلایق جن و انس جنبشن نمیتونن چشمی را بسازن، کلیه ای را بسازن. چه کار میکنن؟ کلیه را مال کسی دیگر را بر می بشر عاجزه، اینقدر علمش ناقصه. پس حمد و ستایش الله، به تعداد مخلوقاتی که فریده ها به رضایتش و وزن عرشش و هر آنچه که کلماتش با اون نوشته بشه. سبحان الله با حمدک سبحان الله حمد صل الله عليه و سلم. مشان الله دائما ویژه